بن تازه ترین وعده است. از عایط ما بیای مکتبان، چه تازه ترین وعده است؟ مخصوص خرطوم مکتبات باشه، می‌زور چاپ جدلا. درست. باید باشه. اینها خودتون یکشنبه گم. اگر من ندارید تازه تهیه کنید، پایین باشه. زیبای مکتبلان به این جدلا و آن نمودارش. این واقعیتره. عادت کنید یاد بگیرید. اگر من چیز تهیه آماده کنید. چهار تا عدد تو اکسل میریزی یه خروجی یه نمودار بطیم میده تزداری وضعیت چیه؟ یکی پس تنگیت بذارم بحث سنگی بودم استراتژی بودم بودم بودم یه تند تند وضعیت ما اینها رو داریم میگو کن شما اگر بخواید. مارکت پلان تحییل کنید؟ قدما باید استراتژی برای مارکت ام پلان تون داریم استراتژی که دوستان باگه چی استراتژی؟ استراتژی برنامه بلند مدت که سالتر روی؟ چرا این نمیشه سایتون افتی کنم اونجی که ما از وضعیت این وضعیت مطلوب یکیره میگیم استراتیجی یاد دیگر دیگر دوستان و رسیدم به بلند یعنی نگاه به آینده خب داشتن یک دید بودن مدر برای رسیدن به وضعیت مضخوب من اینجا میخوام میکنم برسم به اینجا این راه رو بهش میگن استراتژی راه رسیدن به هدف خیلی ساده راه رسیدن به هدف رو برونیم به خب یه کارش که شما داریم چیه این کاری که دانشوهای من بود آیه کاریمین بله دانشویم آمه اینشون بدواته؟ آمه این نه این کل استراتژی بازایی تو مارکتن پلن که باید پیاده بشه این, این سفر خواهش من جلسی اند همه تون حتما کپی داشته باشید رو میزتون هم من ببینم همین برگرد همین سفر سفی کان... 23 این جزوه 23 ای این جزوهی ای بهتون دادم سه. 23 این جزوهی ای که بهتون دادم اسمت فایلش یه. هسه فایلش چی وصل؟ من فایل دیگه تو منیجمنت دادم. داکومنت فایلی که دادم دا دا دا زیاد بود آخر. دومیه، جزه دومی. دو ها دومی. فولدر مارکت پلان دو تا چیز واسون دادم. یکی دیویس چیشه یکی هم که اینه. این صفحه من میخوام بزرگ A4 داشته باشه. چون خیلی زیاد اون پاردلیم. اصلا کول راه رسینن ما این میده. راه راهمون اینه. گفتم به شما پنجاه درصد مارکتیم پرند نوشتنه شه پنجاه درصد اجراشه. اصلا شما اجرا بکنی، حالا شما چهار تا کتابم من میخوام سی درصد سام بازارمون توصیف کنم نه تنی اجرا کنی. به درد لای جرز دیوار لای چرچه درم نمیخوره باید لگر بنویسیم پیروی. به درد نمیخوره هزار تا اینا بنویس اجرای نباش این کامای اجراهمونه کامای اجرای, کام اجرای رستم با اون چیزی که ما میخوایم انجام بدیم کار بکنیم حالا اینا شما درش من روی بیشتر با هم کار می‌کنیم پس یک تاکتیکتون اینه یک تاکتیک جلسه هم حتما این باشه که اینا رو آماده کنید تا کجا تا این جایی که بهتون گفتیم برای بیزنس خودتون آماده کنید سومین تاکتیکتون خواهش می‌کنم شما سرچ بکنید تو اینترنت سرچ بکنید این موضوع رو برامون آماده کنید تو یه صفحه دو صفحه این موضوع رو که دپارتمان بازاریابی و فروش دپارتمان بازرگانی و فروش نحوه تشکیل چجوری چگونگی استقرار وظایفش اینها رو برامون توست خلاصه‌ساز برامون در بیارید همین هم زحمت تایپ بکنید بازرگانی چطور دپارتمان چلونگی... بازرگانی و فروش چگونگی تشکیل چگونگی تشکیل و فرآیند تشکیلش ساختارش وظایفش تو هر شرکت این دپارتمان چیکار می‌کنه چگونه باید مستقرش بکنید وظایفی که دپارتمان داره چیه؟ چون مارکتینگ داره ولی کی اجرا کنه؟ مدیر ارشد این دپارتمان این دپارتمان شامل کیا است؟ پیدا کنید. کیه وقتی دپارتمان عضو است؟ اینو مارکتینگ بلایی که خودم داریم ایجاد مینوسیم همین‌ها رو هم توش بعداً چیز بگم. زیر مجموعه های این کلاس بازاریابی چون چرت مجموعه آقای اسد خازن شان پالانتی. منظورش دپارتمان بازرگانی. دپارتمان ببین دپارتمان بازرگانی مستقلی باشه. چنط عوز داره. مثلا من مدیر عامل، شما یه مدیر بازرگانی، شما با مدیر... هم نمی‌شینیم دپارتمان. دپارتمانی تشکیل جدای خیلی مواقع ها نیست. چرا؟ خیلی جا اگر شرکت خیلی بزرگی باشه جداش می‌کنیم، اتاقش می‌دیم، آدم می‌مونه. ولی فعلاً می‌خوام رو سرچ بکنید بیشتر نهوادون که دپارتمان بازرگوش آیا برای همه شرکت‌ها ضروریه. آیا مثلا شماش شخص حت دپارتمان بازرگوش داشته باشه. شما باید داشته باشه، شما باید داشته باشه، نباید داشته یا لیستش بکنید. ببینید که دپارتمان بازرگوش مزایاش چیه؟ ساختارش چیه؟ چکار باید بکنه؟ چه باید, بکنید؟ باید, باید, باید, باید. ده ده؟ بله این کار انجام بده. واسه تخانه خریده بازاریابی که من دارم روی این دارم توزیع کاری بهتون میدم. پس بسیاری توی مارکتینگ پلانمون تحلیل وضعیت بازاره یا ترسیم راه رسیدن به بازاره ترسیم این راه. آنها کنید من این مشکلی که با اکثر احساسی به دارم نه اینکه اجرای کار نکردن، تولید کار کردن فقط کتاب خوندن درس نمیشم مشکل با اینه این دوام میکنم باشم نه از اینجا به اینا میرسم. اول شروع میکنم میگن بعد شاید درس فور پی داریم، مختبر داریم. اینا تو آکادمی خیلی غشنگی. تو تئوری خیلی زیبا ولی تو بیاد بیا تو اجرا میمیرید ها اجرا کنیم میکشن تا اجرا می اجرا این قضیه براتوش چکار باید بکنم باید از اونجا به اونجا نه از اون بریم برسیم این متولوژی اجراییه که ترش تر خودمون اینو واقعا انقدر بسخ می‌کنم چالش کردیم رفتیم رفتیم رفتیم رفتیم, رفتیم. واقعا خاج بازارو کوبیدیم شکلات خریدیم تا این به دستمون نکنید ما چند چیز اینجا داریم پس راه رسیدن به راه اجرا کردن فرایند ماکتن ما پرنم اونگیم حالا کجا باید برسیم؟ از این ستا باید به اون ما باید این ستاییست چیه هم مشتری یا شرکت رو کنیم میشه من تو کسب کارم مشتری رو نبینم تو ماکتن ما مشتری رو نبینم بعد بگم آره من میکنم آن اختباز روی داریم عدد کردی شما رو دازمیم اینجا رو نهیدیم خواهیم اونجا رو در من باید فقط به این قیمت که افتوشم بیخود کردیم همون قیمت میشه میخورک تو سرتون جنستون رو سه سال نمیخورم اصلا قیمتی که تایم میکنه؟ یاد داشت کنیم کنی. تنها چیزی که توی بازار هیچ ثابت نیست قیمت کنیم قیمتی که کنی؟ شرایط، مشتری، رقبات دروات ما چه شعور آمد قیمات ثابت تقریبا نمیخواد کرد تنهاس که تو فاکتورهای بازار تو کل دنیا ثابت نیست قیمتی انصافا شما فردی چه که 200 میلی باشه میخواد چه که برگشت بخوره چیکار میکنید با میسیری دائما تفت نمیخواد حاضرن ده درصد 5 درصد از سودم کم بکنم جنسو بدم برای اینکه چک هم پاس بشه آوروم و حیثیتم تشریط توی که من تعیین می‌کنم بی خودی که من خودم فلسفه واگذاری می‌کنم بی خود برای چی برای خود چون تو بازار نیستم، اصطفا می‌کنم چون نمی‌دونن تو بازار چه چی میشه چه اتفاقاتی میفته چون جای من و شما نیستم که بخورم چرت تا لگد چرت مشت بخورم چون فوش بخورم اصطفا می‌کنم میگن چیکار می‌کنم ببین آره پروفسور سفری اون متاسف از این هزی که پدر قیمت گذاری دنیا است ایرانیه تو ایران است. بانشکار یورک ایرانیه، ایرانی همه است پدر قیمت کزاری دنیا است به ایرانی متاسفل اینجا نیست آقای خاتمی، اووردش اینجا آقای اینجا، یه سال اووردش اینجا ولی این بران بار دوباره زدنش باز دوباره رفتونجا کدام تا قیمت کزاری داره هیمده هزار صفحه است پس شما قیمت گذاری نگه میشه قیمت گذاری یه صفحه دو صفحه هیمده هزار صفحه کتاب در طرح نوشته پروڈکت، این هم فورپی که شاید خیلی شما هم میدونید بله هر جده بازاریابی این فورپی منظورم بینه قیمت، ترفی، توضیح دسته وندی توضیح چهار تا پی داره product price promotion price. ما باید به این برسیم توی اهداف بازاریم مارکتینگ planer چجوری به این برسیم؟ 3C چی سی هست؟ 3C این است. 3C که ما را به این میرسونه 4 ما را به این نمیرسونه اشتباه تصور نکنید خواهش کنه اگر یه جایی دیدید خوندید خواستید از کار من 3C رو برای من درگید 3C چی 3 3C رو اول باید در بیاریم به فرحله بیاری برسیم اینا که میگم خواهش میکنم چون باید ام دی باید این رو بدونید حالا سواءتون دیپلم باشه لیسانس باشه اینا رو باید بدانید، باید تمرین میکنید این واژهای بیس رو حتما باید برید نگاه کنید حفظ بکنید جلسه بنده هم نمیفرسم ازاتون کاسترمر چیه؟ باید بگید مشتریان بیزینس های مشتریان خصوصیاتشون نیازهاشون ابعادشون تعدادشون روحیارشون فکرشون حال چیکارتونه کاسمار هست؟ کمپانی، شرکت شما، هدفتون، اندازه‌ی شرکتتون، ابعاد شرکتتون، چشم اندازتون، ماموریتتون، چیزایی که منابعتون، جاتون، زمینتون، ملکتون کجا هست؟ تاریخ، تاریخچه‌ش گذشتهش از پدر به ارث بردی؟ خود به دست آوردین؟ کجا آوردین منابع رو؟ و کام تو رقبا. بدون شناخت رقبا، یعنی که داری اینجوری حرکت کردین؟ چند تا رقیب دارین؟ رقبا کجان؟ بزرگن، کوچیکم؟ متوسطن، تو کوچاتونن، تو محلاتتونن، سر کوچن پایینن، بالا. حالا خواهش من نظریه رو اینجوری آنالیز بکنید. خیلیات تا می‌گیم رقیب کوششمش. رقیب، یعنی ماشا همینجوری خیلی اون رقبا شما همکارتونن. این همکارتون تعدادشون، اندازه‌شون، ابعادشون کجان؟ حتماً نه با رقیب جنگ کرد. حتماً نه با رقیب مبارزه کرد. حالا نه رقیب دشمن خودت نگاه بکنی. استراتژی جدویی، با رقیب بعضی ما بعد جون شد. گروه شد. حالا ما در سنتی 5 تا 6 شرکت وجود داشت، ما مثلا با هم جوین شدن. تا در روز رقیب به الان جوین شدن. شدن یه تیم، شدن یه گروه. حالا دارن, دارن بازار رهبری می‌کنن. یه روزی ای اینا به اونها میگفتن بیاد با هم گروه بشیم، اونا ناز میکنن. حالا اونا به من تشکر می‌کنن میگن ما هم واسه گروهتون بکنیم. چون کل خط بازار دارن تعیین میکنن بعضی بار لازمه من با هم جوینت بشم، همکار بشم، با شناختم. من اینا دارم، تو اونا داری. امکانات تو امکانات من میشه با هم یکی، یه تیم میشیم، یه گروه میشیم، یه تیز بزرگ میشیم. نوغامتون، اندازشون، ابعادشون کجا دارن میرن؟ الان دارن چیکار میکنن؟ وضعیت الانشون چی؟ وضعیت آیندهشون چی؟ که امکانات تو قوت دارند. این موقعی من باید وقت برای روخمان بذارم. اشناس همشون. ببینید متفکر وازاییوی هست. آهای پیتر. میگه که اگه دوتا چشم دارید. یه چشمت به مشتری باشه یه چشمت به رقی. یه چشمت کافی ببندی، از اون طرف ضربانی خالی. اون رو ببندید از این ببندی هر جفتشون. بعد این دوتا هستن که به شما که سمت یک آویت میدن یعنی مزیت رقابت میدن مزیت رقابتی باعث موفقیتش شما میشه اگه مثل بقیه کار بکنیم و مثل بعضی اندرکار بکنیم چه عملی باعث موفقیت شما تو مارکت این فناوری میشه مزیت رقابتی مزیت رقابتی از کجا در میاد؟ از این دو تا چه از این دو تا در میاد؟ آنها میشن چه جوری از نمادیت رقابت در میاد؟ پس یاد داشت کنید. دو منبعی مهم ایجاد مزیت لغاوتی مذیعت لغاوتی مزیت چیه؟ از روغبو... چی هست؟ آمیانه عادی بگو چیه؟ خودمونی پس اون که دیگران ندارن دیگر. که آقای کازمی، مزید رابطه همین چی؟ در... مزید رابطه که همین چی؟ همینوزی که یعنی بدونیم که از ناسی که داریم به قیمتی باشه که بتونیم ارزه کنیم دیگه. تمایز هیچی اون رقابتی که وجود داری تمایز هیچی تمایز هیچی یه بچه جداسازی که مشتری ما رو تشکیز پیاره مادر این دیگران ندارد برد چطوری که مارا از جده باون جدا میکنم ارجه میکنم بارد. مارا ما از دیگران جدا میکنم آپشن‌های. های؟ آبشنه آب آب. خاصی که من از دیگران جدا می‌کنم. چیزی که من از دیگران جدا می‌کنم من با دیگران تفاوت بین من و دیگران انجام می‌کنم مثلا نه نمکن... من همیشه فکر کردم که فقط تو ایران خانواده پاکت مشکل دارم <تصفح> تصورم بود که همیشه تو ایران خانواده پاکت مشکل داره دیدم این قضیه جهانیه از هم فهمیدم شرکت فولفو اومد آپشنال خار کدبله دو اتوماتو رو ماشیناش گذاشت چرا چون فولفو یه ماشین مردونه است وقتی گروه خیلی کم خانم‌ها سوال میشن تو کل دنیا. ماشین خشنه، خیلی ظریف ناز نیست. چرا ها گونده خشنه. ماشین ظریف بیشتر آغایین سوال میشن. اومدیم اینو بررسی کرد، آنالیز کرد بازارو، تاثیر تعیین کرد، روغوا رو، مشتریانو آنالیز کرد. بید چیکار کنم من خانم‌ها این ماشینا رو بخرم؟ من دید کار دنیا خانمان تو پارک دوب مشکل دارم یه آپشن رو ماشینش گذاشت میری بقید ماشین با یه دکمه رو میزنی بای بای پارک کن شهر که آتو پارکه دیگه خود یه رانده یکی از شرکت‌های شرکت های خانه میگوید از خونم تا سهد از نیاوران تا سهد تارخان تو 25 درمان رو رسیم با هرم نمی می خیلی دست عالی بیست مثلا لذت بردم حتی یه که... حتی لذت بردم از راهندگیش گوشیمو توی دو این گوشیم ندارم گوشیمو کردم از راهندگیش فیلم برداری کردم خیلی حال کردم از راهندگیش رسید در شرکت تا خاص پاک کنه مارون بجرد اشت گفتم با این دست فرمون چی کار دست میشه یه کاری کرد مضی روبط یه کاری کرد 35% درصد سهم بازارش بین خام ما توسعه داد. گذبت چه شرکتی اولین شرکتی بود که این کار کرد اولین شرکتی بود که من آپشن گذاشت برای پارک دوپ حتی ماشاش یه کاری کرد شما از ماشین پیاده میشی این دگیرتون دکمه رو می خودش خوش رو پاش میکنه فقط بدون فضا هاش باشه مزید رقاتی، جای تمایز شماست است و این تا وقتی که دقت کنید نمیخوام یاد کنید تو زن تا وقتی که تمایز رقا الیت مارکتون پلندتون مشخص نباشه موفقیتتون حتمی نیست، راحت به تونیه معفقیتون نیست، واقعی نیست این مزید رقاتی باید تو چی هایی جبشه تو نیا باید اینجا بشه گفتم شما، نصف کار شما اجراست صد سخت یا رو بنویسید نه بد در من نه در لای جرزه این درد نمیخوره میریزیم به سقف چند دستش اجرا میشه چند دستش بر اصل فرمولی که دارم براتون میگم میسازی که اجراش بکنه میتونی بسازی که اجرا کنی مزیت رقابتی رو تماس روابط تا ایجاد نشن نمیشه کارتون انجام بده از کجا تا میشه منابع ایجاد مزیت رقابتی مشتریان شرکت ها و کمپانی هم هست ولی بیشتر منبعی دادم میخواد یادش چه کارهایی رو مشتری میخواد مشتری نیاز داره، مشتری میخواد ولی روغبات این ندادم روغبات حالا این امکانه به اونها ندادم این آقا کاریابی کار میکنه تا حالا روحبا امکانی به نام تست ایکیو رو نداشتن نداشتم این آقا میگه آقا من برای توی پیدا میکنم در کنارش تست ایکیو هم میدم یعنی تست ایکیو چی؟ یعنی که این کارم برای میمونه، میره، دفاتریش چقدر؟ چقدر کار میکنه، کار نمیکنه، خوش عجمش چقدره درجه مثبت هندشیش چقدر درجه منفیه هندشیش چقدر یک آپشن این آقا شیرینیا رو به تولیدی ها میفرسته تا دیروز روقام گفتن حالا ماشین بفرست هم با خودت این آقا میگه آقا جون با خودم هزینه شان با خودم حمل شان با خودم میدونم شیرینی وقتی میرسه اونجا سالمه اونجا دیگه تحت درگیر این نیست که آقا چقدر کرایه میشه چقدر شد چقدر نشد بدم ندم آقا با خودم یه آپشن اضافه میکنه چیزی که مشتری ها میخوان ولی رقبا به اینا ندادن من میدم رقبا چجوری منبع ایجاد منبول ایجاد مزیت هم چه کارها رو رقبا انجام میدن دیگه شما ها تکرار نکنید نمیشه بسه رقبا عمل کرد چه کار رو رقبا و مشتری ها میدن شما همون کار رو انجام شما کار دیگه انجام بدید چه چیزهایی رو روحبای شما مشتریتون میدن شما درست این کار انجام میدید می یا انجام میدید سر جاش بمونه اگه دوباره کار رو تکرار نکنید یا رونا رو خلال خلاقیت داشته باشید یا سعی کار دیگه برای مشتریتون انجام میدن اضافه تر روحبای اضافه, اضافه, اضافه تر یا قشنگ کنید یا دفرست باشید یا دبست باشید یا دفریند باشید FPD قانون FPD را چه گفتم بهتون که چیه اینه هر وقت میگم می دید مثلا توی سمیناری ساختمان داره میگه تئوری FPD ما این بود بعد FPD چلا کجا اومد این لغت چیه FPD نرم ما اولین کاری که تو شرکتمون کردیم دیگران نکردن این بود بهترین کاری که انجام دادیم با رقبا و رقبا نکردن این بود تمایزی که داشتیم، خلالیتی که داشتیم انجام داریم، انجام داریم نیب کنیم اولا خودش کارگاه آموزشی که من توی هشت ساعت میرنیم برمارو تدریس میکنم ما رو جزیتش این, این بفهمید ازراز می نفهمید متاجه میشه اجران میکنیم اجرانه ایم چیم کنیم نه این این دوتا پوزیشن رو متاجهی چی دو تا چکار میکنیم؟ بعد از استرابیلتی دوتا دو این تا انسیمنتشن رو هر نفاشیم؟ بازارد بیا هم بیانم بگیم خب، نا خیمیم؟ باست از من دو دقیقی اینا بیگم، بعد دیگر میبریم برجه از اینجا، از این حال چیزی استبلی کی استبلی رو می‌گینند می‌شناسند کار کردن ؟ جلسه قبلی تو سرم بود گفتن تو سازمان، از اینو از این تو در احترس نه، از ساختار سازمانی خب این از گفتن من نمیدر، تو استبلی اوتی در میاد استبلی اوتی سازماناتون خودنون و شرکت چاستی یعنی میگم از اینا به 40 این میرسیم روی فیتن تفکر کنید کار بکنید تقالیت شما باشه واسه یعنی میشه مرحله دوم هست 4 مرحله 4 مرحله و بعضی اون میان قیمت گذاری یا اصلا قیمت گذاری چقدر توریب بوده چقدر هزینه رو قیمت تعیین می‌کنه شروع چون اینا تو بازار نیستن. چون چقدر مثلا پروداکت ها میگن خب باشه ببینم مشکل باشه کاغذش چی باشه فرآیند این برای که انجام کنه. همچرا سند بله شده؟ یه اگر کنم. شما خودت فهمید. صرف ایستو نارده نو شمزده سپراش ایستو درون بسید آسرگوییشم رو مرسی مزیف خیلی وی سواره سلام آرشد خسنم موام نزدت خویدیم از هم با شما شدیم هم با شما نشان شدیم خیلی